بسم الله بنامه خداونده بی اندازه مهربان نهایت باره قسم به با انجیر و به زیتون و به کوه سینا و این شهر آن واکن انسان را به بهترین شکل و متناسب ترین حیعت سپس او را به پایانترین ترین مراتب فرو ماندگان قرار دادید جد آنانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند که برای ایشان پاداشی است که هرگز قطع نمی شود. پس بعد از همه این حقایق مبرم چی چیست را به تکذیب روز جزا واداشت؟ آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست؟